بسم الله الرحمن الرحيم محصنات لفظية محصنات لفظي ابتداء يك تشابه الأطراف تشابه تشابه قوشها كنارها إن تشابه أطراف شأري يست هو جعل آخر جملة صدرة تالیتی ها تشابه اطراف اینه که شما آخر جمله رو ابتدای جمله بعدی قرار بدی آخر جمله رو صدر جمله بعدی قرار بدی او آخر بیت صدر ما یلیه یا آخر بیت رو ابتدای بیت بعدی قرار بده که قوله تعالی این آیه کریمه فی ها مصباح دران چراغ هست خب این آخر جمله هست همین مصباحو ابتدای جمله بعدی دوباره قرار داده المصباحو فی زجاجته مصباح در یک شیشه هست دوباره این جمله توم شد زجاجه را ابتدای جمله بعدی قرار داد. از زجاجه تو که انها کوکبون دوری اون شیشه گویی که ای درخشان است. پس تشابهات اطراف بسیار ساده است. این در نصر بود اما مثالش در بیت در شیر اذا نزل الحجاج ارضا مریزتا تتد تتبع اقصى دائه فشفاها شفاها من الداء العبال الذي بها غلام اذا هز القناة سقاها چون نزول کند حجاج يوسف به سرزمینی مریض به انسانی بیماردل به انسانی که کرده از حکومت خروج کرده میگه تتبع میکنه جسجو میکنه نهایت مریضیش رو اونو شفا میده و اونو از بین میبره خب اینجا فشفاها که آخره بیت اوله بیت اوله ابتدای بیت بعدی قرارش داده دوباره اومده شفا من الدائل ایضالی لذیبه ها شفا میده اونو از اون مریضی سختی که برش اومده است غلام اذا هز القناة سقاها غلامیست پسر و چیست زمانی که نیزه رو تکون بده اونو سیراب میکنه خب اینجا میبینیم که شفاها که در انتهای بیت اول قرار گرفته در ابتدای بیت بعدی شاورده همینه تشابه الاطراف خب این چیز سختی نیست دوال جناسو دومین محسن محسنه از محسنات لفظی جناس هست هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى جناس تشابه اللفظ در نطق ندر معنى ويكون تاما وغير تام وبردونه يك تام لا غير تام بس جناسة تام داريم جناس غير تام فالتام ابتداء جناسة تام متوزجة متفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب اغا جناسة تام انهز كحروفش در حيات يعني حركات زمه و فتح و كسر سكون يكي باشي در نو يكي باشي يعني الف و با و تا و ثيم جيم حا الى اخر در عدد يكي باشي و در ترتيب ترتيب هم رائق باشي مثل انسان مثل إنسان. انسان و اگر این دو تا هم معنا اون موقع جناس چی هست تام هستن دیگه چون در هیئاته نوع و عدد و ترتیب هش با هم یکی هست فقط معنا فرق داره فقط چه دا معنا فرق داره حالا بیا اینجا در و هو متماخنه خب خود جناس تام بر چند نوعه خود جناس تام پس اگر دو تا لفظ هیئت و نوع و عدد و ترتیبی که بودند ببین جناس معناشون یکی نیست معناش اون دو تا لفظ یکی نیست, نیست ولی اگر به این مثل هم بودن مثل انسان و انسان مثل مردم و مردم آه مثل در و در مثل کتاب و کتاب مثلا میگن این موقع میشه جناس تام ولی خود جناس تام چند نوع داره که میاره و هو متماثلون انکان بین لفظین من نوع واحد و جناس جناس جناس تم متماثل هست اگر دو لفظ از یک نوع بودند یعنی اسم بودند یا فعل بودند یا حرف بودند پس اگر هر تا اسم بودند یا هر تا فعل بودند یا هر تا حرف بودند میشن چه؟ متماثل. ماننده لم نلقى غيرك که انسانا یولازو ملاقات نكردم جز تو انسانی که بش پناه برده بشه فلا بره برحت لأین الدهر انسانه همواره برای چشم روزگار مردمک باش اینجا بین انسان و انسان جناس تامه چون هیئت نو عدد ترتیب یکیه بعدا متماصله چرا؟ چنو هر دوتا اسمان چون هر دوتا چیه؟ اسمان و مصطوفیون انکانه مالشوه چی آورده؟ مصطوفا انکانه من نوعین کجای مالشوه؟ مصطوفا درسته و مصطوفا انکانه من نوعینی بجا ادومی انسان مارا یکه؟ نه این انسان دوم بمعنی مردمه ما که چشمه ها اگر یکی معنا داشتن اون موقع جناس بشنه بیگفتن تکرار کلمه بود اون یعنی با فرق بله معنا فرق میکنه فقط خودش گفت برگرد هو تشابه اللفظه فی لا فی لا فیلمانا انسان دومی مردمک چشم بله، خودش گفته برای چشم روزگار انسانا مردمک باشی لعین الدهری همواره برای چشم روزگار مردمک باش یعنی خدا تو رو حفظ بکنه متوجه شدی نو؟ خب و مصطوفا و مصطوفا هست جناستان امکان من نوعی اگر از دو لو بود اگر اگر از یک لو بود یعنی دو تا اسم بودن یا دو تا حرف بودن یا دو تا فعل بهش میگن متوافل اگر از دو لو بود یعنی یکی اسم و دیگری فعل آه از دو لو بود خلاصه اون موقع مستوفا نمیده میشه مانند این مثال فدارهم فدارهم ما دمت في دارهم چقدر زیبا و ارضهم ما دمت في ارضهم ببین داریم و داریهم اینا جناس هستند جناس تام هم هستند چون در حرکت و همه چیز با هم دیگه اون چار چیز با هم دیگه که ولی چرا متماسل نیستند چون داریهم اول داری فعل امره و هم پس مدارا کن آنان را مادم تا فی داره هم که در خونه آنها هستی ولی داره دومی همه پس اینا جناس تام هستند ولی از نوع متواصل یا مصطفا مصطفا چرا؟ چون اولی فعل و دومی اسم فداری هم داری دارا یو داری فعل امرش میشه داری فعل امر چون ناقصه هر فعل از آخر هست شده فداری هم پس مدارا با آنان مادامی که در خانه اشان هستی و ارضی هم مادم تفی ارضی هم بین اون دو کلمه ارضی هم جناس تا موجود داره ولی از نوی مصطفا چون اینجا هم داستان به همون شکل فعل ارضی فعل امر از ارضا یردی ارضا از یرزی که مزار مفرد مزاکر حاضرش میشه ترزی امرش میشه ارضی یا از آخر حس میشه در موتالات حرف اعله از آخر حس میشه و ارضی هم و رازی کنانن را مادامی که در زمین آنها هست خیلی زیبا پس بین داره هم و دارهم هم جناس تام مصطفا هست و بین ارزه هم و ارزه هم جناس تام مصطفا هست زیرا از دونو متفاوتن دار اولی فیل امر داری دار, دار بعدی اسمه اونجا هم بینیش و متشابه وجناس تام متشابه هست ان كان بين لفظين احد هما مركب والآخر مفرد واتفق في الخط ميغي و جناس تام متشابه هست زماني كه بين دو لفظ باشه كي يكي ازو دو لفظ مركب باشه دو ديگري مفرد ولی در خط و نوشتار و نگارش باهم يكيان اذا ملیکن لم يكن ذا هبتن فدعهو فدولتهو ذاهبتو ببین اینجا ذاهبه از دو كلمة تشكيل شده ذا از اسماه خمسه هست یا همو سته هبه هم بماني بخشش وعطا عطا ولی ذاهبه دوفم اسم فاعل از ذهبه از ذهبه هست مفرده از یک كلمة تشكيل شده اما بین اينا جناس تام هست ذاهبه و ذاهبه داراي هبه روانده معنی آشون هستند چرا متشابه هست؟ چون ظاهبه مرکب هست اما ظاهبتون مفرده میگه زم... زمانی که یک شاهی نبود دارای بخشش بخشندگی نداشت ولش کن که دولت او رونده هست دولت از دستش می روند بله خلاح بله پس اینو فهمیدید دیگه بریم جلوتر و مفروقون علم یتفقه میگه مفروق هستند اگر در خط متفق نبودند یعنی میگویند در اون مرکب و مفرد بودن اون شرط رو داشته باشند ولی در خط متفقه اگر نبودند چونین میگه خط جمله کتاب اینو میگه نه کلکم قد اخذ الجامه ولا جامه لنا من لذی بر مدیر الجامی لو جاملنا خب همه شما گرفتید جام را و جامی برای ما نیست چه ضرری به چرخاننده جام چه ضرری براش داشت لو جاملنا اگر با نیکوی با ما هم رفتار می کرد خب اینجا جاملنا و جاملنا آه بله جاملنا یعنی نیست جامی برای ما. جاملنا یعنی مجامله کرد با ما ها. خب اینجا جام... اینها جام... مفروق هستند زیرا در نوشتار مثل هم نسان جامعه لنا به دیگه شکل نوشته میشن با جاملنا. البته هر دو تا مرکبند. هر هر دو تا؟ اینو بعضی از مشارهین تعلیق زدند البته اینو خود. یعنی گویی که با این شاهد شرط نیست که در این مفروق یکی مرکب باشه و دیگری مفردتون اینجا هر دوتا مرکب إنجا هم دار باوراقية البته توزيه دادي ها ميقف اللفظ الأول من المتجانسين وهو جاملنا مركب من اسم لا وخبرها، وهو المجرور مع حرف الجر والثاني أي جاملنا مركب من فعل ومفئول وكتابتهما ليست متفقتا في الصورة تلك كتابتشون يكنيس خبش ميان مفروق فلو اكتفى في المفروق كون المتجانسين غير متفقين في الخط ولم يشترط كون أحدهما مركبون والآخر مفردا كان مثال المفروق بهذا ظاهرا وإن فيه مع عدم اتفاقهما في الخط كون أحدهما مركبون والآخر مفردا أول في المركب من فعل ومفهول بأنه لما عدوا الزميل المنسوء المتسلمين صار ذلك المركب في حكم المفرد فصحت تنسينه بیشت چیز قشن دو جیز گفتگویلش کن خوب و غیر تام رسیدیم به نوع دووم جناس رسیدیم به چه نوع دوم جناس چه غیر تام غیر مختلفه في واحد من الاربعت المتقدم اگر جناس در یکی ازول چار چیزی کزف شد یعنی در حیات آ آ عدد، نوع و ترتیب اگر در یکی از اینا فرق داشت جناس تام نیست غیر تام نیست و هو محرفان خود این هم انوایی داره یک و محرف هست چه زمان؟ این اختلف لفظاهو فی حیعت الخروف اگر فقط در حیعت با هم فرق داشت یعنی در حرکتها فتحه و کسرو و زم و سکون اون موقعش میگن محرف ماننده جبتون بردی جنۃ بردی جنۃ البردی جنت البرد. برد و برد اینا ببین در نوع فرق ندارن در عدد فرق ندارن در ترتیب فرق ندارن فقط در چی دارن فرق در هیئت پس نشود تام زمانی که در هر چهار چیز متفق باشه میشه تام در یکی از اینا فرق داشت میشه غیر تام خود غیر تام باز مختلفه باید هم مختلف باشه چون اگر در با فرق داشته باشه اسم دیگه ای می میگیره در لو اسم دیگه یا حالا که در هیئت فرق داره یعنی در حرکت ها بیش میگند محرف مانند برد و برد جبه پشمی است برای سردی و مطرف و مطرف نامیده میشه إن اختلفة في عدد الحروف فقط أجر در عدد حروف هارك داشت وكانت الزيادة أولا وزيادتهم در ابتداب إن قول حرف إضافي در شبوت ومضيّل إن كانت الزيادة آخرا ومضيّلنا بدم شيء أجر حرف إضافي در انتهاء مدبوت نحو يمدون من أي وجاي مكلفني انت مثلا لا توين كتاب لي آورده خب این کتاب, این کتاب اشتباه اشتباهی چاپی زیادی داره این ببین نه آوردی میری یکی دیگه رو باس باله كوجاي ان هم نقار فيارته ان لا بعد ذلك نحن كان مع باله شو مترف نامیده میشه اگر در تعداد حروف با هم دیگه مختلف بودند و زیادت در اول بود پس اگر بین اون دوتا جناس غیر تام یه حرفی اضافه بود و اون اضافه در اول بود مترفی گن مانند انکان فراقنا مع الصبحی بدا اگر فراق ما با صبح آشکار بشه اصلا هیچ صبحی برای همیشه آشکار نشه داره دو دعا میکنه نه میگه اگر جدایی ما از صبح شروع میشه همچنین صبحی اصلا نیاد خب اینجا بین بدا و عبدا جناس خیره تام وجود داره بدا و عبدا از اون جایی که حرف در تعداد هست و در اولش هست آه؟ بدا و عبدا در ابتدا دیگه حرف اضافه اومده اش میگن تی مطرخ اما اگر اون حرف اضافه در انتها اومده بود مثل عواص و عواصم میم در آخرش اضافه شده است مثل قواض قواضب که بعد در آخر اضافه شده باشی بگم موزیال متواجه شده؟ که ساده هست یا مدونه من ایدن عواصم عواصمی تصول با اسیاف قواضن قواضب بیگت دراز می کنند سوائد خود رو دراز میکنند دسته های خودشون رو برای زدن برای که؟ برای زدن اصاق که اینجا منظور چمشیره یا دراز میکنن دستشون رو برای عواسم برای محافظت از دوستان و اولیاء یا دراز میکنن دستانشون رو برای زدن دشمن یا برای محافظت از تصولو به اسیافن حمله میکنند با شمشیرهای قواضن کشنده قاضیه قواضن قط کننده خب اینجا جناس غیر تام ما مزیل هست چرا؟ چون حرف اضافی اومده و در انتها هم حرف اضافی اومده عواص عواصم میم اضافه در آخر قواض قواضب با اضافه در انتها پس اینو میگن مزیل و مضارع و جناس غیرتان مضارع هست چه زمان؟ این اختلاف فی في غیر متباعدی المخرج اگر اختلاف در حرف بود ببین اگر در حیات بود خوندی اش میگفتن چی؟ محرف اگر در تعداد حروف بود اون موقع یا مزیل بود یا مطرف حالا در خود حرفه تا حرف نوعش با هم دیگه فرق داشته باشه اینجا هم یا مزاره هست ها؟ یا لاحق هست اگر مخرجشون نزدیک بود بشت میگن مزاره اگر دور بود بشت لاحتت میگن و مدار اون فی حرفین غیر متبعدی المخرج و اون جناس غیر تام اگر در حرفها با هم دیگه فرق داشتن مزاره هست اگر دو تا حرف اختلاف در نوع حرف بود و ولی مخرجشون اونون با هم دیگه دور نبود مانند ینهونه و ی در ینهونه و ی که در آیه کریمه اومده جناس غیر تا موجود داره، چرا نیست؟ چون میگیم نوی حرف با همدیگه فرق داره ها و عین با همدیگه فرق دارن خب موقعی که دو تا حرف با هم فرق داشته باشن یا مزاره هست یا لاحق اینجا مزاره. چرا چون ها و عین با همدیگه نزدیکه یعنی ها و یعنی او نه یعن یعنی هونا یعنی نه میکنن یعنی ان یعنی دور میشن بله و لاحق هست و اگر دو حرف با هم دیگه فرق داشتند ومخرج شنباهم دور بود بش ميگن لاحق معنى انهو على ذلك لشهيد وانهو لحب الخير لشديد معنى انهو و شهيد هاويا باهم ديه فرق دارن وله مخرج باهم ديه دور هست و جناس ان اختلفا في ترتيب الحروف و غیرتام بهش میگن جناس قلب اگر در ترتیب خروب با هم دیگه چه داشتن؟ فرق داشتن مانند نیل و لین ببین نیل نیل نیل نیل نیل راسی نیل و نیل و لین نیل هم میشه گفت البته ولی اینجا شاید نیل باشه مشکلی نیست شما اگر نیل بگی بازم جناس هست دیگه مگر نیست؟ <تصفح> خب مانند کنیلو و لین خب بین نیل لین جناس قلب وجود داره چون در اولین نا ابتدا اومده لا در انتها در دومی لا ابتدا و لون در انتها یا ساق و قاس یا ساق قاس بین ترتیب حروف فرقی نمی کنه مهم اینه که بین ترتیب حروف اختلاف اومده می شوند جناس قلب خوب. تص... ابتدا تا اپ تدای فقط سه رد صدر. سو من تصدیر رو می خونیم. س و رد العجز الى على الصدر. سويم ارای لفظی التصدیر هست. یا اسم دیگه همدار رد العجز الصدر. بازگرداندن عجز انتهاب الصدر يعني كلمه كي در اجزومه ده در صدره اون بيت هم تكرار بشه خوب وهو في النثر ان يجعل احد اللفظين المكررين او المتنا او المتجانسين او الملحقين بهما في اول الفقرة این چه آرایه ایست؟ میگه در نصر این است که یکی از دو لفظ مکرر لفظ مکرر یعنی آقا در معنا و در همه چیز با هم یکی باشه ولی فقط چی شده باشه؟ تکرار, تکرار شده باشه اول متجانسین یا همجنس باشه ولی معناشون با هم دیگه؟ آه. فرق داشته باشه اول ملحقین بهم یا لفظی که به این دوتا ملحق بشه لفظی که به این دوتا چی بشه؟ یا به خاطر این که مشتقند از یک کلمه مشتق شدن، یا شبهی به وجود داشته باشه پس شدن چار نمونه دیگه تا این جای کار متجانسند تکرارند یا ملحق به اینها هستند از راه اشتقاق یا شبه با هم شدند چارتا با هم شدند چندتا مکرر یعنی یک لفظ همون لفظه همه چیزش ولی تکرار شده یا معناشون فرق میکنه مثل سائل و سائل یک سائل یعنی پرسنده از سوال میاد یک سائل مثلا از سیلان میاد آه؟ اینا ها با باهم شدن متجانس ولی مکرر نیست دیگه مکرر زمانیه که همون لفظ به با اینهی باشه نه یا نه ملحق شده ولی آن راه اشتقاق یا راه شبه که هم میشه چار تخور و بله در اول فقره در اول فقره بیاد و ثانی في آخرها و اون کلمه بعدی در آخر بیاد در اجز بیاد ماننده چار تا مثال هم جالبه آورده ماننده قوله تعالی و تخشن ناس و احق و و از مردم میترسی در حالی که الله مستحقتر است که از او بترسی تخشا و تخشا این بهش میگن تصدیف چرا؟ چون همین کلمه در صدر و در عجز شده چکرام شده ولی این از نوع کجا این برای کدون یکی مثاله برای مکرر ده برای کدون؟ برای مکرر چون این تخشه همون تخشای به اینه معناش یکیست اما دومی دو رو دقیق داشته باش و... و... سائلون لئین یرجعو و دمعه سائلون پرسنده انسان پست گدائی کننده از انسان پست باز میگردد در حالی که عشقاش جاریست سائل و سائل اینجا ما میبینیم تصدیر وجود داره چون اون کلمه در صدر و در عجز تکرار شده ولی این از نوع دومه یعنی متجانسه یعنی چی؟ متجانس. یعنی یک کلمه نیست که تکرار شده باشه اینا ها متجانسه چیه؟ متجانس. بله یکی در اول فقره اومده و دیگری در آخرش سائل اولی به معنی پرسنده سائل دوم در معنی روان به معنی جاری مثال بعدی استغفروا ربكم اینهو کان غفاره استغفروا در ابتدا اومده در اول فقره اومده و غفر در عجز اومده خب اینجا استغفروک در اول فقره اومده و غفر در آخرش اینا با هم دیگه از غفره از غفران چی شدن مشتق شدن متوجه شدی پس اینا هر دو تا از مغفره مشتق شده اند لذا اینا ملحق به چی میشن؟ به متجانسید اما مثال برای شبهش مثال برای چی؟ شبه یعنی به اشتقاق شبه به چی؟ قال اینی لی عملكم من القارین گفت بانم من برای کار شما يد از دشمنان هستن یعنی مخالف کاره شما از دشمن کاره دشمن خب اینجا قال و قالین قالو قالین این شبه اشتقاق هست گفته اولی از قال گرفته شده بله دیگه قال یقول اما دومی از قلی خلاصه کلام زمانی که دو کلمه یکی در صدر فق در ابتداء فاقرابید و دیگری در انتها ایش میگن تی؟ تصدیر یا همون قدی صدر ال... صدر العجوزی على رد العجوزی على صدر این در نازم بود در نصر اما در نازم بصالح شو وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخرو في صدر البصائر الأول در نظم تصدير بإني شكل هالشي يك يزن لفظ مكرر در ابتداء بيتبيع يك يزن لفظ در ابتداء بيتبيع خوب وفي النظم وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت یکی از دلفس کجا باشه؟ بیت. آخر بیت. بیت باشه. والاخره في صدر المسرایل اول. و کلمه دیگر در صدر المسرایل اول باشه. اول باشه. او بعدش. يا در صدر نباشه بعدش باشه. يا در صدر نباشه و در بعدش باشه. باشه. مانند سریون الى ابن العم يلقي وجهه سریع هست. خب. ينک. بال. شتابان هست. بسوی ابن عم. پسره. امّو. یلقب وجه و اون پسرامو هم سو شکل رو سیلی میزنه بیچاره رو داستان بین شکل که کیمیگر رفت گدایی کرد از پسر اموش در جمعی اون هم شکار کرد سیلیش زد خب ولی سیل داعی ندا به و به سمت فرا دعوه دهنده ببخشش میگه نمیشه توبه خب اینجا میبینیم که سریعین که در آخر بیت اومده آه در اول بیت اول هم اومده در, اول مصر در صدر مصره اول هم اومده یا این مثال برای صدر مصره اوله ببین تصدیر در نظم اینه که در آخر بیت بیاد سریعین در آخر بیت اومده این شرط داشته باشه در میسرای اول در اول یا اومده باشه یعنی در صد یا بعدش اومده باشه یعنی در حشف آمده باشه در وسطه اومده باشه در کجا؟ که مثال بعدی همینو میاره تمتع من شمیم عرار یعنی نجد بحره ببر از بوی گیاه خشبوی نجد فما بعد الاشیت من عرار بعد از امروز دیگه عراری نیست از اینجا قراره برد خب اینجا ببین عرار در آخر بیت اومده ولی در مصره اول در صدر نیو بعدش اومده در حشف اومده در کجا اومده؟ در وسط اومده پس این شد از تصدیر در شیر